بسم الله الرحمن الله و و الله که روضیه این روایتی بود که در تفسیر حنیفیت شأن حضرت ابراهیم (ع) به عنوان برادران رسول و آل او حدیثه شدن متابعت از ملت ابراهیم حنیفاً اتباع تنهف بکنن از ملت ابراهیم رواید در علی ابن در این کتاب حالی این به صورت ده تا چی به اصطلاح زیر شده یه صحبت راجع به این روایت از جات مختصر به همون که خود مونداریم قبول روایت رو خیدا بکنه هم از که این در تفسیر و من دیروز یک قسمت تفسیر رو خوندم این در صفحه پنجه از جلده یک ایشونم حالا خوندم در این کتاب جمال احایی این چاپ آخری ازانی رو در ازین چاپ شده چاپ سیده جلدی. در جلده 21ش یکش ایشان اینجور مطالب رو یک باب خاصی بناب سفر و نظافت و ملاقص و مساکن و دواق قرار دادن اما در کتاب وسائل صابتان ما همز کنم چون کتاب تهارت آباب بوده هممو اون تهارت رو ابواب تهارت بوده بیشون بلید از ابواب تهارت وسائل یابجا کنه یکیش همین برسید نساکنین ها, ها نساکن رو یابجای کردن نساکن مثلا معنومتاب وسائل و ابواب و سخلا تو بودن این شب اینجور چیدار یکی مستقلی آلوان اینجور مواقع در کتب قدیم ما مثل کافی و غیرکاف با عنوان زیده و تجمل می آمد یا تجمل و مروعه می آمد مردانگی به در کتاب مثل وسائل مثلا یه قسمتش رو مثل همین نزاخت این رو تو اباوتاره ورده مساکنش مناسب محل مسا... م... م... م... مکان مسلی تو مساکن رو پی جه دسته یه چاپ قلی چاپ در بحث در محسن در جمل عمادیسی در این رو کردم اینا رو برداشته اینه که بیشتر یه باب مختص خودش قرار داده این جلد سفر و نظافت و ملابس و مساکم و دواب و بله اینها رو جزادانه یک باب خاصی قرار داده در جلد بیستویه بلن این روشن روشن بلی نیست ایشون در اینجا در سفره دیست هفتاد و هشت این چاب جلد این مستب رو در تفسیر قومی جلد جلد نمیشه از خطهی تنگوان حالاستن وقتی جنر نیستن اون چاپه خطی تنگیه قدیه که چاپ قدیه باشه لکن در اینجا داره عن عدی کعفر علیه السلام احتمال این که این فاضل معاصر و مساعد جمال احادیس. یا یه خاصی از تفسیر باشه که بسیار بعیده خوب العاده بعیده برحال احتمالا اشتباه شد باشه و اشتباه شاپانه از کردیم اول نصال این روایت در کتاب تفسیری که ما الان داریم چاپ شده که روز خوندم داره هیچ اسم امامی نداره در کتاب سرد سعود رو بیه داره اسم امام رو هم نبود در کتاب مجموع بیان نقل از تفسیر این از تفسیر این در سرد در کتاب مجموع تفصیح علیه بیان نامه هر چه خیری در این نواشه ردیه حن صادق داره اعتبارش بیشتر راه مونه بنابراین باعث باشه این که لو سلا اون دو بزرگان اونان سره چه نه شن شده که نو شاپه چیز باشه غلط چاپی باشه این راج به این روایت این روایت اونجایی که من الان گشتم در مصادر اصحاب ما چون ما روایت و رو از جهات بررسی میکنیم تا اونجایی که من گشتم پیه مسادر از خواب ما به عنوان به اصطلاح حنفیت یا حنیفیت البته گیروز اون از حنیفیت ظاهره جایی من دیگه آنو که ده نکنم فیلن. حنیفیت هم به معنای وجهت مد... و جدیفت جد جد حنیفن مسلمان معنی در موشکی اون هنفیت باطنه،, باطنه باطنه اونه به اصطلاح عبارت از تعبیر به این مثلا ده کلمه ده تا نقطه در تهارت بدن این رو من الان در جایی ندیدم خیلی به این صورت یک چیزی شبیه این در مصادر عامه هست که در عرض میکنم الان صحبت من مصادر خاص هست در مصادر خواسته نیدن اما مثلا در همین کتاب از کتاب فری حضرتی این فری هم همون چاپ قدی متاسق قال رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم اِنَّ الْمَجُوز جَزُّو لَهَا و وفر و شوارب همون اِنَّا نَجُوز و شوارب و نَعُفِلّه ها ویل فطره مند این روایت داریم سنی اما اینجا دیال فطر اینی که ما در شاهد مهرغاز کلمه دیال فطره چون این روایت با عنوان مسلمان فتره تحبیر به عنوان حمزه مسلمه را فرطتا لا اله الا الله خطر الناس به دیال فطر تهذیب شده که در این روایت هست این اشاره هست از اون روایت هم سندش ضعیفه و مرسله اما در حال این تعبیر به در اونجا نه شده ام... ام... ام... یک در هدایه شیخ صدوق، اون هم در ده چیزه لکن اون فرق میکنن حالا انشاءالله تعالی دلالت این هم اونجا تعبیر به فتفت نشده اما به عنوان ده چیزی که در بدن یا در رأس یه جای دیگه هم من دیدم تعبیر به فتفت شده چیزا نکنم در از این تغییر پس پس خیلن در روایات ما خیلی محدوده این دختار با هم در همه روایات عدیب نبرادی محدود شده که دهتا با هم دیار این راجب متن روایت و این که الان ما راجب او چیزی نداریم از در این روایت در همچه که در این کتاب جمال حاضیس هست و در کتاب مرکون تفسیر قومی هم آمده نوشته فلمتون سخت الى یوم القیامه این حنیفیت منتون لکن هم در کتاب مجموع بیان که از امانساده مرک ایشون از امانساده اینجا نهار و نه از سهل عجیبه. از این دو محصر پرموکه در هر دو محصر هست این دواره در این دوار روایت و در روایت مجموع بیان داره که از پرمودن بگیم که فلمتون سخت ولاتون سخت الى یوم القیامه این جزء احکام نه شرایط اداری است که از زمان هر چه وانی تا روز قیامت ما در بحث به مناسبت استصحاب شرع حساب را اصول بحثی کردیم که این طور نیست که تمام احکامی که در انبیا صادر شده هی با هر نبی که نرس بکنه یا جزء بگیره یک سری از احکام که در از زواج اونها تفسیر شده یکشان اونجا اینا اصلا نسخ نشودن مثلا که از ایام اول انبیا بوده تمام انبیاء الهی این پیامبران اینها رو داشتن. دیگه چه این بگم؟ این فعلا مسادر ما این روایت که تایید خطرفت شده، مصادر ما چن؟ حالا اگه سوال دیگه ای رو بشه اضافه کنید تا واقعا روشن به این ما پیدا میشه، به این مطلب پیدا نه که بعدشواهد رو بحث می‌کنه. چون در میان مصادر اهل سنت یه دو بحث می کشوین، درشین، درشین هست، درش در نیست. این شرایط ازشون که نم باشند با این مطلب اختلاف داریم تو میذیم با این مطلب میشه این شرایط ازش. این از یه بینرسه. بسیاری دیگری که بود در کتاب تفسیر علی ن ابراهیم این مطلب در زیلا آیه از ابراهیم ربوه به کلمات آمده دکارت فهمد سقف پنجانه همین چپی که الان معروفه این در زیلا اینجا آمده سقف پنجانه جلوی ولکن بعد داره و قب بعد داره که و اما قولهو در آخر سر و قول هو و تبع ملت ابراهیم حنیفا و تبع ملت ابراهیم حنیفا بشونه اشاره میکنه که این معنای اون آیام هست وقت این و تبع ملت ابراهیم حنیفا این در همین جدی که الان دست من هر جده که روای کتاب علی ابراهیم در صفحه 32 نوادو بله. یک آمده، اینطوری آمده. البدن و سوما او هنر الیچ، ملت ابراهیم حنیفا، و هیال حنفییت الان، آن ملت جردهای ابراهیم عليه السلام. 5000 بدان و 5000 در راس. برای که با عنوان ترجمه است و عملتیتل بدن سخصستملجنابع و تور به و و و و البدن و و در بدن با عنوان حلقو شعر اللتی و عنوان خللق و به کار مورد و که عملتی سر است یعنی نیست چیز کردن ما و حق زشاره و, و فاقونده ها و سوات و خلال اینجا هم دو مصده داره فحاد ایلم تنسخ اله یوم قیامه اون این نشونده که معلیف کتاب آزان در این چون در همه سفه پنجانه هم همین طور فحاد ایلم تنسخ اله یوم الغیانه. لیکن در مجموعه بیان در کتاب سعر و سعود فحاد ایلم تنسخ ولا تنسخ اله یوم این لا تنسخ هم داره اگه اعلام کنسم ولاصص تحت لایومجیانه و مناسب بود که اون حدیثو اینجا می آورد. لكن خود در صدر حدیث باشه امام صادق اطلاعات ادرادین دولت سید اسماعیل و در اسماعیل در ذیل آیه در سوره بقره آورد. و الا اینجا اشاره داره و اونجا تفصیل داره. پس در سوره روم نظر ما در سوره نعم آیه 120, 120 و بیسته، سد و و ملت در اینجاشون متعرض این نکته و اون سوی دیگه که قسط الله علیه ها اون در سوریه موارکه رومه یه در اونجا چیز نیانده این راجبه موارد وجود روایت که من دیدم با این متن موجود جایی نیامند در مسادر ما مشابهاتش آمده که برده شهر هست در کتاب هدایه شیخ و ساده اونوشش ناقص دارده عبارتو من دارده عبارتو کامل درش بکنم این راجعه به شواهر این باید و اما الان چون مصدری که در خیار ما هست علاقه لحاله تفسیر این را اینه در این کتاب که هم شده این اسم و چی در چیز این کتاب مجموع بیان و چیز کتاب مرحوم سیدم تابوس رضی الله و رحمه الله و آنان سرسون داشته که تفسیر علی ابن ابراهیم یه روزی توضیح مختصری یه قبل هم هست شد این خب این کتاب موجود مشکلاتی داره از کردیم این کتاب موجود احادیسی با آنان حدیستانی دارش هست که قطعا مال علی ابن ابراهیم هیست مال ابن عقوده مثل که شاید سال بعد از ابن کرد. این پیلی واضحه یعنی این جای ابهامی می نداره و ارد شد چواهر موجود ما حاکیت از قرطا تا شاد تا برنه هشت همون تفسیر اصلی خوده این موجود بوده چون شخصی به نام این اطایقی یکی تلخیصی از اون تفسیر نوشته بعدی از مثالی میگنم تلخیص از این تفسیر موجود نیست و ظاهرا اون چیکل افتیاری بیشان اصل تصویل بوده. ظاهرن. ظواهر می حالا هر ایشون اینه. کتابی ایشون شاگرد تفکر محفظه اینه که سر علام هست. در برمه هشتون این نوشته. حسد و در از سر این کتاب نوشته. و نسخه ای به خط ایشان در کتاب خانه ها فیلن موجود الله موجوده و از هم شده ایم. لکن حالا، وقتی که آیا واقعا مسخره ایشانه نه، اونا چه خودش، اون که یعنی این ترین کسی که از تفسیر علی نبراهیم بعد از سیدم تاولس و به میکنه که ظاهرا خود کتاب الیه نبراهیم را اما قرن نهم در کتاب و بسایه که به ذهن ما هم اولین کتابی است شده، رواجی نیست که هم همین کتاب ممکوده. اصلی این علمی موضوع هم میخواد. هر چیزی که در حدثنی عملو نذری کرده اصلا یه موضوعی چون چه تفسیر مقال هم خب واسه هر کتاب موضوعش رو کرده یکی دو مردن در کتاب هست یا کتاب موهیب هست اختلاف معنی با هم دارن او نیسته. این کتاب نیست کتاب همین کتابه اما ممکن متنش که تفسیر شه چیزی ما اولین بار این کتاب این کتاب توسط از مرحوم اجلیسی من و راوردی دیگران به این اسم مشهور شد و نسخه این کتاب به مقداری منتشر شد تا میشی که در این عالم نراشتند که اولین مختصر امام برکن آوردند بعد این تئی نسخه ای که ایشون در اونجا از و فصیشه مال بعد از هزار قبل از هزار نبره و اون نسخه با همین نسخه موجود می و که از نسخه که ایشون عورده تصویش بعد از هزار قبل از هزار ما نداره در تحصیل کتاب و نش نگاشتنه کتاب موجود این که کتاب این باشه باشه نسخه قدیم باشه 700 بعد نیست نسخه قدیم این خیلی بعد اونی که مهم اون ارزش که نسخه باید پیدا بکنه مخصوصا در کتاب هایی که تاریخی وزع تاریخی نیست. و از اغابوشنی ای دردارم مثلا این تبصیل رو بود اونی که ارزش بیشتر داره این هایی که ما الان در گنجینه کتاب هفت میشه با انتاب خطی حالا آن من این مکنم چون بازون کتاب شانسی خطی بشم و که به طور کلی اینجوریه یا یعنی نکاتی که خیلی بهش عرضش یا یا باید خود اون ناسخ و کاتر از یک نسخهی که گرفته اوتاق اون نسخه و خصوصیات و اون نسخه رو زرست بکنه چون سابقا هم به اصطلاع ما اروزی همون فوتوکوپی که نبود به جایی فوتوکوپی بیشن صورت و خط المسنه صورت و خط نسخه تلید نقل نامه ها این صورت این فتوکپی زمان ما هست می آمدن می که در آخرش در این صفحه پلان در اینجا در صفحه وسط، در صفحه آخر. این جورشکل بود متن کامل اون رو می اووزند اونچه که موجود بود این منشه ارزشی کتاباب بود حسه بعضی ها شاد مصر فیت نویسنده یا قابی بودن کارشون استصاف نه کتابشون س خیلی ارزش ادی نداشت اما فصل مثل چ سال بعد سال۵ سال, و پنجه ها سال ها، یکی از خود ما هم نسخه ای رو که خیلیی ارزش علمی نداشت و یک نسه مصحری طلاقات طلاات میکرد یا بر نسخه معند، پس نسخه در اصلش ارزش چندانی نداشت اما بعد از این که قراحت می شد خصوصی هستون در این سخت ممکن بود با زمانه استنصاف نسخه سیصد ست سالم پاسه داشته باشید بعد دید که از علما می گرفت این نسخه از این کتاب به خط محلقی و ای بود که معروع بر محلق خود خوندیم این اونم با اون مطابله کردم با اون مقابله کردم و اینطور مثلا ها رو گرفتیم تصحیح کردیم. اینی که وقتی صحبت کتاب های خطی میشه، اونی که خیلی ارزش داره این قسمت هاشه اما این که حالا خود خطی بودن بد نیست، اونم تازه برمیگرده به اون خطاط. از به خاطر از خطاط‌ها مصاحبتی رو افسانه‌ای داشتن که کارشون داشناس و دستاوره بود. می‌گه به یعنی این سمچو داریم. یعنی کاری نمی‌تورو. راست صحبت از کتاب کافی رو یک کسی که انتشارات داشت که اسطلاه براغ میگفتن یک نفر میشست برای صد نفر کتاب کافی رو می اونه همزمان مینوشتن این ستا نسخه تثیر میشدهین شاپ که امروز ما دار در ون به این صورت بود اسکس و تکسیر نسخ به این صورت بود یکسي کارشم بود یه کار نداشت میشست مثلا ده نسخه کتاب هر نسخه رو ده نسخه منوشت نسخه پس اینا که این کار میکردن اگر واقعا جز فضلا بودن فقط این خوب بود که اینا در تصرف در کتاب نکنن خودشون تثیره ایلاسی را اگر هم این سواد بودن اقایتا خلق ننمیدن تو از همین نصف که قدیمیان هم هست همین که خود کرده خیلی واضحه ابن عباس نشه عبی عباس کاملا واضحه خب این کسی که بین ابن عباس و عبی عباسش که با بکنه خیلی همش در باشه کاملا روشن این یک مشکلی بوده این لذا عرض به این نصحه هایی تو کار آسان نیست مجموعه شواردیست مجموعه مطالعاتیست خیلی داره اون که راجع به کتاب علیه ابراهیم هست با قطع نظر تحقیقات خارجی را به عرض اونی که در میگرده به نسخ شناسی یک مشکل واقعا برای من هم هنوز همه نشده که چرا؟ این دو نسخهی که قدیمترین نسخه موجود فعلا که اطلاع برش پیدا شده دو نسخه است که از قرن یازدهم هزار دششششستوفت ساد است. مشکلش اینه که اولا نویسنده هر دو نسخه عدهای از ستابهای دیه به خطشون موجوده مثلا یکی تهدید نوشته یکی فقیر نمیشه احتمالا کار نا اسپنصاف بوده احتمالا احتمالا احتمال وارده که مثلا کاروکستشون این بوده زندگیشون این بوده. اون که حالا اگر پر نام نبوده جا. اون که مشکل کار کاروکستی میده؟ نسخه از هر گونه الامن خالیه این خیلی عجیده این خیلی مشکل یعنی خیلی در نظر ما تحجیباوره کسی که تحضیر استنصاف در یا فرسونکری استنصاف کرده منان نسخه فرابان از استنصاف این دو نفر موجود لكن متاسفانه تو این کتاب هم نمیشه از چه واسه ای گرفتن از خویا انسان یاد بگیرن هیچ نه اشتباه توصیف کرد خود کاهب امسا به موسی مستنطخ آنها رو نمیشه که از خویا هم یاد بزنن که حتی مثلا به اجازه لام قرانه ما چون باید موسی یه نظر ارزش اون نسخ اجازات است یا در اول یا در آخر یا در اون است به ارزش مخواب عرضش داره اجازاتشون خیلی با گویا enormously بعد این اگر اهل فرد بوده، مثلا من فقط تو منسخ مثلا بازاری مثلا مولانا نه ببینید متداول نداریم چیزی تداول ادیشون مینوشتن آخرش که تو فقط تو منسخ مدل مربوط علاخنا و تاریخ و فلان و سوره و و از اونش نصحی و بعد دهدش اضافه میکردن یکی کسی میگو بله این آن سال هزار نوشته هزار دیویس ما این از علی ایم که که ما خدمت استاد رو مقارنه کردیم به هیچی نداره به قول شدی فکری مثلا قلب از اول تا آخر صافه هیچی از این استنتال ها و تکید آه و بلاقات و این یک واقعاً مشکله خب یک کتابی که این دیگه اقل هاش اینه که حداقل ببینید چه نسخه من استثنا کرده من این نقطه از اینا یه بازار پیدا کردیم یه نسخه خطی داریم با با, با... نسخه خطی بعد از لازم تاریخی اونها بعد اون نوشته شناس کشو chamber شهری بوده فاز بوده قابل بوده چیزای دیگه اینا اون نکات مهم نسخه خطی قسمت‌های شانریشه اون قسمت‌های فاجیشه که پلیس تاریخی اون رو پیدا کنه متاسفانه از این دو نسخه ای که ما در اختیار داریم که این آقا نوشتن و اکسیش گذاشتن هیچ نوع آثار تسریح آثار علمی که ما رو به گذشته های این نسخه روشن بطن در برست این خیلی مشکل این واقعا یه دردی بر ما که اینا چرا لابه بیدنش مثلا از این نسخه نشونه پلان بود همین؟ نوازیر احمد اشعری که الآن شده به اسم یشون نسخها که چا شده نخه شیخ هر معلوم شیخ هر ن نسخه رو نظر استنصاح فرمودن بنظر سال 78 و یه چیزی اینجوری هزار هشتاد و هفت یا هزار هفتادوهشت فتهشت خود در حاشه نسخه نوشتن من یو استنصاح از یک نسخها که تاریخش هزار هشتاد یا یعنی اختلاف زمانیش هفت سال یا هشت سال خب کاملا روشن کده ولی نوشهی که ایشان ماده قرار زدن ارزش ندارن نوشهی فاضل ارزش داره یه چیزی هم رو خدایشان نمی‌شه اون نوشهی که من از استثناف کردم اگه اون 7 تا 8 سال اگه 8 باشه 8 سال یکیش خب بعداً لیکن اختلاف عقلا داره واسه این کتاب مطابق هست با در کتب اثر خب این کاملا واضحه که نسخه که ایشون به انتشار صاحب کرده فاقد ارزش علمی بوده یه نفر زمان خودشون نمیشه هر سال هر سال قابل نشه ایشون هم روی حرف میگه مطالعات وارده ولی حرف دیگه این که هیچ چیزیه یعنی با همون نوشته انسان میفهمه که ارزش اون نسخه خیلی کمه این متأسفانه در نسخه تفسیر علی ابن اهرانی نیست یعنی یکی از مشکلات ما الان اینه یک ان که ه ی از ا یک از ام علما اسفهان ونهم جود مثلا سالها هزارو خرده بوده هزار سل شا خیلی خیلي آدم فاضل زحمتم کیده اونجا مثلا شون دو دوت تفسیر علابن تفسیر صغیر و کبیر از هر دو هم میکنه کبیرش با همین موجود میخوره غیرش نه خب یشون متاسفانه نمینس چه نسخه اعتماد چه نسخه از تفسیر علی ابن ابراهیم برسنه کبیر بوده کی گرفتن مواسفات نسخه تشکیل سبیرش هم بود مرموم به هاراجه به تفسیر علی ابن ابراهیم نرمون کنه زارم بازاری بوده مرموم شیخ هور نرمون زار هم نسخه بازاری بود مصیبتی که ما در این جرد داریم اینه تنها شخصی که حتی مرمومه حسر امین سلیمان حیلی که ها گیر ایشون هر جمعه ها نوزه به همین اجازه ها آمی که از شهید یه اجازه در اصلاحی اصلاح اصلاح چند بار تحرارش کرده اجازه هستی این نسخه شناسی که نداره ایشون. اونم مثل معلوم صاحب مرجمان بر تبرسی و دیگر از پا اون رو به طریق آهولا آهولا چون رو غالبا ازن نهید معلومات جه از این کتاب به لحاظ نسخه میده، مردم سریم در سر دست و دفتر یه چند ماهی دوست داریم سریم نمی‌نامی میکنه فقط امضاهای نسخه بلاد هر جی می‌گه که مثلاً هر کار مجله در مجله می‌تونه شن کارا سر کارا یه چند روزه. کراس اینجوری. اما عظیمی نسخه مفتکه نسخه اینجوری. حدس این جدی علی بن ابراهیم جدی هنر علی بن ابراهیم قال حدس این ابو بن محمد. حال حدیثم این علی هم از عباس محمد نعبید هم محمد از علیه روی اون نسخه ای را که محبوم سیرون تاووس میده اون هم جزا به نسخه خب محبوم سیرون تاووس از واقع تا که در عمده هفتان و شیستد شار رو تا علی ابن افراهیم سیستد و 278 سال این فاصله زمانی نمیشه هیچ نمیشن فقط نفتر مختلف نصف اینه اون هم می مایردی دو تپرین بلاله مشکل از یه مشکل اصلایی که این کتاب مال که همینه چون در یه نصف احطی که ما از که از سال هزار تر صادتا اون هم همینطور آمده نمیشن حدس علی ابن روی و قال حضرتان و عباس ابن محمد و مشکل دیگ یکی هم که مثلا اپوستل به محمد این که دیگه خیلی مشکل میکنه اصلا به تمام مطالب و تمام بحثا رو به می دلیله که این چیه مخصوصا در این مسائل خطی داره که اولش حضرت علی بن ابی طالب حاشا قابل حضرت علی بن جوانی دیگه تشریف آیا واقعا همین نسخه درها استرساب شده و نسخه متعبوس همین نسخه هست که محتفایی که نرکرده با یکی از این نسخه خطیق میخورد خیلی ترکیباوری که واقعا برای ماها من که واقعا متعجیمی کتابی با این همه غباریاتو هست واقعا کتاب علمی پخته‌ای کتاب زحمت کشتی هست زحمت تناواتی کشیده شده که از مصادر واسهی از داره که جای دیه پیدا نمیشه. جا جای در حدیث احمدییه جای دیه پیدا نمیشه و خونه دلی خورده شده چطور این اینطور شده من واقعا شک میشه چرا دیگه دو ساعت طرف قرار میزنم ببین به نهاییت دیگه واقعا نمیشه به نتیجه چون اون علی بن ابراهیم اگر مولا جوانی معروف باشه غیر از طبعش سید از سادات نفر از سجاد کتاب داره، اما وقتی این که کتاب فراز از علی ارها هم مال اصلا این بون نمیخوره، اون علی بن برجه بون نمیخوره، یعنی کتاب به هیچ وجه اون نمیخوره، اونم داریم چند پرواز داریم با مجما، اما حتی هم که این شخصی به هیچ وجه با او تناسب نداره، به هیچ وجه اون موجود تناسب نداره، اینم خیلی عجیب دارید مصرف الان هر حالا نهار کنم که اصولا ما برای شناسی کتاب هایی که آن موجود داریم که مخصوصا معلفین اونها واضح نیستن یکی از راهای خود همین نسخه شناسی هستن غیر از کتاب ها. ما الان انصافا شونیم به سه شدیدی حاکمه در اینکه خود علیه ابنه را این تفسیر برسید اجمالا نمیشه انکار کرد اما این نسخه موجود یا نسخه که نهار شده اونا چی هستن اونا در یکی از شاورداران علی بن ابراهیم یه تقاریات به اضافه در خیلی این بحث مثلا چرا الان تحقیق می‌کنم حالا یا حاله به لحاظ نسخه‌شناسی برای ما الان خیلی نمی‌تونیم از نسخه خطی موجود چیزی غیر ولی تنها نسخه‌ای که یک مقدار قبل از این سند چیزی داره همون نسخه سید امتابوسه که اصالت امتابوس در حدی جاها خیلی توصیف دقیق از مستر نمیده انصافن خیلی علمی نیست توصیف هاتشون و از جاشتو به اون موظم جهان انصافن یکی جامعه هم اینجا خیلی توصیف دقیقا از موضوع در اختیار ما قرار نمیده این لاجب میده اما حالا با تمام این اوصاف، این کتاب موجود چیه؟ حالتی این کتاب موجود دو تا مشکل داره ما تا حالا یه مشکلش متر کردیم یه مشکلی دیگه یه مقدمه داره در تقسیم و آیات رو با آنکه خاص و ناس رو با منسوخ و آمون مطلب و مقاید و ظایر و آمون و باطن آم و, و این طوری این مقدمه‌ای ای مقدمه که در اینجا آمده در رساله نام محتمل و تشابه هم آمده در یک کتاب ایست منسوخ به سردن در امدلال ناس و, و این مقدمه تقریبا مخصوم با منتشابه آن خیلی مشابه. این مقدمه با این ترتیب در دو کتابی اومده اونم یک مشکل دیگه. یک مشکل مقدمه است این مقدمه مال کیه مرتضی علی ندرایمی مال کتاب دیگری این یک مشکل دیگه. ما واش هم پیدا و درمونشن قابل تنظیم نشه یک مشکل دیگه کل کتاب مجموعه ای که میشه احتمالات داشت اینه یک همین طور که از بزرگان فهمیدن این کتاب تفسیر علی ندرایمی باشه در حد چیزهای مخالف توش داریم. یا تحبودن قبول بکنیم که بگیم اصحاب نسبت دادن یا خب صدیه این بگیم تحبودش بیمذر سوال نهارو یا معتقده به یک نوع چیز بشین دخل تصرف بشین این احتمال هست خود من خیلی اعتقاد این احتمال ندارم اما احتمال هست یکی از ذهن راقیق این تو واقعا خب در جزوستان که لاله دوسو زیپی انقدر توش مولا علی نورمجیان بزرگا نروکن به ها دیگران هیچ چش موجود نشه خیلی عادی بوده سال ساله دیگه کتاب نروکن بازین مال علی, علی ابراهیم نیست خیلی همچین مستعد به ذهن میاد میشه این استعارات رو اینجوری برداشت شد دقت بکنید اصل کتاب مال علی بن اصل تفسیر مال علی بن لکن این نصدهی که الان دست ما رسیده یک یه مقدار نقیصه داره که الان دیم بگیم هم که انجام داده چون اون کسی که کتابت کلمسه چون چرا نقیصه داره برگشتیم به کتاب سرین تاوز با این فهم میکنه به کتاب مجموعه بیان با این فهم میکنن به کتاب همین مختصر ابن عطایری که باید نرم بکنی که الان نیست یه نقلهایی ما از علی ابن ابرانی به این شکل موضوع الان نیست و سوگه یه نقایستی داره با تفصیل سرگیر از اون اون چی که با تفسیر کردیم نمترده که از همی موجوده با سرگیر شما این به یک احتمال پس اینطور احتمال بدی کسی که کتاب رو اسپن ساخت کرده در حقیقت تفصیل علی ابن ابرانی نوشته محصول اگه اون مقدمه مال علی ابن ابران ناسخ و قرآن و منصوبه هم نسبت دادن اینجور تفسیر خلاصه همیشه خلاصه مدلعا تحریر نهایی این در حقیقت اون کتاب ناسخ و قرآن برداشتی در مقدمه داشته تفسیر هم برد برده نهایت دو تا کار دیگه هم کرده یک یک قسمتر تفسیز کرده دو به مناسبت حالات غیرت تفسیر هم توش اضافه شده به اینکه این کتاب رسمه همون تفسیره یعنی کتاب با عنوان رکسی همون تفسیره نه کتاب دیگری باشه اون دقت روحان اون مصنف کتاب ناسق کتاب کاتب کتاب در این نسخه هم بعضی از عبارات را کرده و هم به مناسبت آیاتی بعضی از عبارات رو خودش اضافه کرده مثل از ابو جاود اضافه کرده از فرات اضافه کرده کی برای خودش اضافه کرده اول زیاد ولی ازاد در طور تاریخ هم کتاب و رو و علی ابراهی رو رسال دادن اون مقدمش هم ناسورگوان خود علی ابراهی هست حالا اون بگیم پس مال خود معلم این شخصی که این کار رو انجام داده یعنی محاید بگه هم مال علی ابراهی هم مال عبو جاد هم بقیه احادی همه صحیح هم همه رویات صحیح این یک احتمالی که ابتداعا به ذهن میاد این با این احتمال خوبی داره عمل قدم های اصحاب ما تبریه میشه از که اون نصف الان خیلی ابحام دارن وقت این هم که مثلا در یک نصف خیلی داره قاق افلش اینطوره قاق عبالحسن علی ابن ابراهیم قومی مصنف آدال کتاب حدث بسم لارمانه و حدث اون عبالحس عباس بگیم اصلا این کتاب همون کتاب تفسیر علی ابن ابراهیمه اون آقایی که استنساق کرده اضافاتی خودش کرده اینم یک یکی احتمال وقتی این احتمال وقتی یه داره که این کار ست سال چی ست سال سا، چهار منطفل داره خب منطفل شده این کتاب اون بوده این آقا اضافاتیه احتمال دومان که محبوب آموزان خیلی دوست داره که جامعه کتاب رو حساب کرده یعنی بود عباس و جامع کتاب جمع کرده به این کتاب استادش علیه مقرانی و یک ازده از, از تقاثیر دیگه طبق این تصور اون که مثلا حدستن احمد ندیس همون عباسه به محمد بود تصور ایشان طبق تصور آغازت مرمومه آیه آبوزه خیلی اقتماع ضعیفه ازشون خیلی مفسرم نروشتن توضیحاتم ارز کردن اشون بعد چاپ نجب اون نسخه خودش به مراجعه کردن جایی که ا به نرسون تعدیب آور بوده با خط قرنه برن نرشتن من نصفه خطات ها بهشون بیزن هر از خیرم خوشن احتمال ثبوت همه احتمالی که در ذهن ما هست که اصلا یک کتاب دیگری اصلا تفسیر عبیت نراجیم نیست حالا این چیشون کتابیه چون یک موضوع واقع در ما نیستیم توی کتاب پیدا بکنیم مشکلی چیده مثلا آیات الاحکامه، آیات الولایت، آیات النوب و برسید چی بیمارد آیات الاباهده، آیات الامعاده، یک قنوان شد آیات کل قرآن شمید مگر بگیم ایشون همینجور مثلا بیه حساب کتاب جامعه کتابی شده کنیم ایشون نبیسته جامعه این نزده بله طرز کلی کتاب جنبه ترمیدیه این هست اون گیران کلی کتاب اون جنبه ترمید به اصطلاح باسم باطن و باسمگراهی این جهاد در کل کتاب ملحوظه این رو میشه قبلی کن وقتی این آقا که این کاره کرده مقدار زیادش از تفریح علیم رومه استعانت گرفته یه مقدارش هم از مسادر دیگه است کتاب کتاب دیگه اونی که الان به ذهن ما میاد همینه این احتمال لیکن احتمال اول هم انصافاً برید نیسته که خیلی در این کتاب مالی که دیگری باشه و بین مثلا قدوی 600 سال ملتفه نشدن مثلا بزرگانی نصیب اون به ها و دیگران که این کتاب مال علیه نبرالی میست یا مثلا نصره خطی تصیح نفره اوله که مال علیه نبرالی میست توانیوش قبول که نصره خطی هم قبول نیست و مشکل دارم پس ما بنابراین برای تحرید این کتاب به طور کلی یکی نصره خطی کتابه که اول نسخه زیاد نداره اون نسخه هم مشکل داره کلا حتی نسخه طاووس راه دوم راه خود سبك کتاب و اسلوب کتابه که الان سه تا احتمال از کردم راه سوم که از این راه بیشتر رفع شد بیا اون مشایخ میحضرتین حدسنی اینا رو تشخیص بدین یا از موضوع کتاب مثلا این در قرن ها چند تا کتاب چون ما تا سال و سال ببینیم مثلا محدثینی که ایشون ازش درکرده بزرگانی که در کیه مجموعه یک که در این زمان از سالهای سیزاد سیزاد سیزاد سیزاد سیزاد به سیزاد راجب به تحویل قرآن ما ندارم قرآن فی احضر بیر متاسفانه این دو هر هم خیلی خیلی جواب واضح نمیده فردای اشاره میکنم در این وقتی شده و سلام